بی تو ای سر و روان با گل و گلشن چه کنم زلف سنبل چه کشم آرز سوسن چه کنم آه که از تنه بدخواه ندیدم رویت نیست چون آینه ام رویز آهن چه کنم برو ای ناسه و بر دورد کشان خورده مگیر کار فرمای قدر می کندین من چه کنم برق غیرت چو چونین می جهد از مکمن غیب تو بفرما که من سوخت خرمن چه کنم شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخ دستگیرر نشود لطف تهمتن چه کنم مددیگر به چراقی نکند آتش تور چاره تیر شب وادی ایمن چه کنم حافظا خلد بر این خانه موروس منه. اندر این من اند در این منزله ویرانه نشیمن چه کنم